پیگوناس هر گفتم کدوم دهان لب از کامران کنند. دوستم چاش تمویی کنند کنند. دوستم کارو جنسر تلبد میکند لب. در این معامله کنترل زیان کنند. گفتم گفتم به نقطه دهنت خود که برد را دفتم حقایتیست که با گفتم کند دفتم سنمقرست مشه و باسمت نشین دفتا به امین همینو امان کند گفتم هوای میکده غم میبرد از دل دفتا خوشن کسان که دلیش آدمان کند گفتم شراب و خرقه این مذهبه است. گفت عمل به مذهب پیر مغان کند. گفتم زلال, نوش. زلال نوشلبان گفتم زلال نوشلبان پیر را چه سود؟ گفت به بوسه شکرینش جوان کند. گفتم که خاجه کی به سر هجله می رود. گفتم زمان که مشتری و مه قران کنند. قران گفتم دعای دولت او برد حافظ است گفت این دعا ملایق هفت آسمان کن هفت آسمان هفت آسمان بقی خیلی غزل است. غزل زیبایست خیلی من یه دور دیگه خودم میخونم گفتم کهیم دهان و لوت کام بران کنم گفت آب چشم ارچه تو گویی چناک گفتم خراج مصر طلب میکنند لبد گفتا در این معامله کمتر تر زیان کنند گفتم به نقطه دهنت خود که برد را گفت این حکایتی است که با نکته دان کنند. گفتم سنم پرست مشو با سمت نشین گفتا به کوی عشق همین و همان کند گفتم هوای می کرده غم می‌برد زده گفت خوشان کسان که دلی شادمان کنند گفتم شراب و خرقه نه مذهب است گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند گفتم لعل نوشلبان پیر را چه سو گفت تا بوسه شکری نش جوان کنند گفتم که خاجه کی به سر هجله می‌رود گفت آن زمان که مشتری و مھر گران کنند گفتم دعای دولت او ورد حافظ است گفتیم دعا ملائکه هفت آسمان کنند اولا ملاحظه این فرمایید که باز اینجا می که خاجه این خاجه شخصی است احیانا یکی از وزراست و تمام وزرا اون دوره لقب خاجه داشتن خیلی هم بودن معروف ترینش که چند بار حافظ از برده جلال الدین که چند دفن اسمشو بردیم ممکنه او باشه ممکنه کس دیگه باشه به هر حال تجدید فراشی میکرده خواهیه مثل اینکه و زنی میخواسته بگیره این غزل رو به عنوان مبارکباد حافظ براش دروده اما تمام غزل به صورت سوال و جواب دقت فرمید و تمام مصرهای اول با گفت هم شروع میشه مصرهای دوم با ها گفتها در شعر در مقام جواب وحری میاد این الف و آخرش در میارن کمتر در نصر این کار میکنن ممکنه گاهی بکنن ولی در شعر برای بیشتر رعایت وزن گفتم گفتا چیز اصطلاح وزنشون یکی این است که این الف رو در گفتم و گفتا نه نه یا اگه داره من بلد نیستم اونم ممکنه هیچ ذاتی نمیدونه واقعا هیچ گفتم کیم دهان و کامران کنم ببین اینجا الان این زرافت این چقدر زیاده کام یه معنیش مراد آرزوست یه معنیش هم دهن چون از دهان لب معشوق اسمیوره میگه کامران کنم گفتم که یم دهبتا یعنی تناسب معنی رو به دقت در نظر گفتم که هم ده ها کامران کنن معشوق جواب درست نمیده اگه دقیقت کرده بشه نمیگه فردم نمیگه حالا میگه چشم گفت آب چشم هرچه طبوعی چنان کن. بدون تعیین وقت <تصفيق> گفتم که هم ده ها کامران کنن گفت آب چشم هرچه تو چنان کنید گفتم خراج مصر طلب می کند لبه خراج مالیات و بیشتر مالیات باق و عراضی کشاورزی و در اون روزگار مصر قند داشته یعنی نیشه کر می کاشته و بسیاری از زمین‌هایی که بعدها می‌بینیم بایر شده و دیگه چیزی توش کشت نمی‌شه اینا زمین‌هایی بوده که یه روزگاری کشت می‌شه مثلا در جاهای پر آب علتش اینه که آب زیاد که می‌دازن روی این زمینا، این آب یه قسمتش فرو میره تو زمین، یه قسمت چند بخار می‌شه ولی اون املاح، نمک‌هایی که هستند که نه بخار میشه نه تو زمین پرو می‌شه اون رو می‌مونه چند سال که گذشت این زمین به علت وجود اون املاح کچل میشه. یعنی چیز نیم. ما در پاکستان، من در پاکستان که بودم پاکستان و هند هر دو وقتی دست انگلیس‌ها بود پوشش کرده بودن که آب رو دهنت زیر زمین می‌گرده چون اونجا از زیادی آب به و اونچه ما از بی آبی صده می بینیم و ناراحتی می بینیم اونا از بسیاری آب برای که رودخونه هاشون زمین مثل کف دست هزار مایل شما از لب دریا میاد بالا ارتفاع تا سطح دریا دیویس متر. یعنی صاف بعد یه ها کوهای هیمالایی شروع میشه که بلندترین کوهای دونیاست در نتیجه این صافی رودخونه که آبشون جرایانده آدم نمیفهم نمی فهمه جرایانده خیال میکنه وایس رو دید. و اینا عیب بزرگش اینه که در رودخونه های کوهستانی وقتی سیل میاد این سیل ده دیگه طولیش. هر باشه هرچی رو میخواد بزنه میزنه و هرچی رو میخواد خراب کنه میکنه و هرچی رو میخواد ببره با خودش میبره و بعد تموم ولی در هند و پاکستان که اینجور نیفش که ای که مثلا آب یه متر، دو متر پایین از سخت زمینه یواش، یواش، یواش یه اینچیه، اینچ آب میاد بالا خیلی آهسته بعد میاد بالا تا سر لب بعد باید میزنی رو زمین میزنی رو زمین زمینه میگیره همجور میره، میره، میره، میره تمام زمین میشه دریای آب میاد در خونه شما نگه سلام علیکم اونجا را می آفته اول جایی که میری زیر زمین این ها از برنج گذاشتی زندگی گذاشتی همه میری توی آب که <تصفيق> این آب برمی تمومش خدا می دونه. برای خیلی آهسته است و بعد زمین رو که میگیره ما مارا می بیرون میرن رو درخت مردم رو بعد بختم میرن رو درخت اونجا بار می زنیشون. ما هر سال بنده که اونجا باوست هر سال، نمیدانم یه میلیون، دو میلیون، سرم زد زهر ما رو از محسطه حسارک می‌شتیم برای پاکستان، تابستونا برای درمان کسانی که مار زده بودشون، و هر سال می‌گفتن، سال دیگه جلوشو می‌گیریم و نمی‌گرفتن برای اینکه گفتم وقتی انگلیس‌ها بودن، این آب رو دهنه زیر زمین نگرشتیم بعد اینا هی مراقبت نکردن، دهنه شد نومه، نومه شد هشتون هش میتر شد، هف میتر، این که کشت اوزن برای زه کشی میشکست کنارش، آب نشت میکرد، اعتنال نمیکردن تا آب رسید به ساعتی زمین در مسته زمین شد آب بعد این آب وقتی که فرو مینشینه، املاحش نمیره که نیمونه اون رو دو دفعه، سه دفعه که موند، زمین دیگه قابل نیست. یعنی باید زمین رو بشورن ولی خب چجوری بشورن؟ برای اینکه این آ من رفته بودم تو خونه فرهنگ یه مدیر خانه فرهنگیش رایزن این فرهنگی اینچه بود خانه فرهنگ هم یه امارات دو و بغلش بود باید بارون رو ندود خیلی زیاد و بایست داده بود بعد گفتش که عاب رئیس خانه فرهنگ شمالی بود رو آها یه فکری بکنین این آب این خانه رو تخلیه بکنین خب آقای صورت کجه میخوان تخلیه کنین شما جایشو پیدا کنیم کنیم <تصفيق> چشم من دستور مید بعد نگاه کرد این طرف اون طرف این خونه اون خونه اون خونه اون باشیم یعنی واقعا خیال نمیکرد که اینجوری باشه سرازیری نیست که آب بره آب با می سه تا وقتی بخواش در نتیجه به این ترتیب بسیاری از زمینهایی که الان با زمینهای خوزستان همیتون شده در خوزستان نشکر می خیلی هم زیاد دوره نظامی در وسط شیرین میگه به بوسی دخل خوزستان خریده معلومش درآمد خوزستان زیاد بوده دیگه و دوره نظام قرن شم قرن هشتم دیگه از قند خوزستان صحبتی نیست قند مصر ازش هر بگید که نام قند مصری برد آنجا اون غزل در وصف شیراز میگه خوش آ شیراز و وضع بیمثالش خداوندان نگه دار از زوالش چه و چه بعد میگه که نام قند مصری برد آنجا که شینان ندازن دن فعالش و اما قند شیعه لوکس بوده این صورت نبوده که ما بریم به قیمت نزدیک به مفت به بسه گنده قند خرید. این قند رو با وسایل ابتدایی فقط از نشکر میگرفتن چه قندر هم نبوده یعنی چه بوده نمیتونستن قندش بگیرم نیشکر رو با وسایل ابتدایی لح میکردن شیرهش میتشتن و با وسایل ابتدایی تر این صافش میکردن رنگش میگرفتن و قند ارمغان و تا بوده یعنی از یه شهری به یه شهری که میومدن اون بابا مثلا یه چرک نمیدونم یکیرو نیم من قندم میگرفته اینو یه سیر یه سیر به بوستانش هدیه میکرده برای اینکه فکر نکنین من اینو را از خیالاتم میگم بعد سعدی در در آغاز مقدمه بوستانش میگه در اخصای آلم بگشتم بسیم به سر بردم ایام با هر کسی تمتع زهرگوشه یافتم. زهرخرمنی خوشه یافتم. چون مردان شیراز خاکینهاد ندیدم که رحمت بر این خاک با تولای مردان این پاک بوم برنگیختم خاطر از شامرون. به دل گفتم از مصر قند آورم. برای دوستان ارمغانی برند مرا بد نمیتونست خودش بخرید سعبی پول نه اشتغن بخره سوقات بری برای دوستانش مرا چون توهی باشد از قند دست ببخشید مرا اگر توهی باشد از قند دست سخنهای شیرین تر از قند هست نه قندی که مردم به صورت خورند که عرباب معنی به کاغذ برم بعدم میگه که قند من این بوستانه چون این کاخ دولت به پرداختم برای ده در از تربیت ساختم ده باب یکن باب, احسان، یکن باب عدلست و تدبیر و رای نگهبانی خلق و ترس خدای دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند پس به هر راست پاست سوم باب عشق است و مستی و شور نه که بندان بر خود به زور چهارم توازو، رضا پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین به هفتم در از عالم تربیت به هشتم در از شکر بر عافیت نهم باب توبست و راه ثواب ده هم در مناجات و ختم کتاب به تاریخ میمون و فاول، س... به ب... روز همایون و فاول سعید به تاریخ فررخ، میام دوئی به دو ششتت و پنج که پر شد شدیم نام برده آفیان بین دو تا اید پرچ و اید قربان که دو ماه و ده روز فقط طول میکشه، این بوستان ساخت و اگه بگی از اون مثلا ایده قربان امسال و اید فتر سال نیست حتما میگه میان این دو اید در سال 65 برهاد قند رو گرون بوده و ارمغان می بردن به همین دلیل مالیات جاهایی که نشکر می کاشتن خیلی زیاد بوده و این که میگه که لب تو باز خراج مصر طلب میکنه دو چیز نشون میده. یکی اینکه که وصلت گرونه دوم اینکه مصر جنسی که ازش میاد قنده بنابراین لب شیرینه خارج مصر طلب می کند لبت یعنی لبت شیرینه چایی هم نمی خوردن خونه چیز چرا انگور بوده شیره بوده شیره انگور را می گرفتن به خصوص در ممکت اسلامی چون شراب چیز بوده چون شراب انداختن که مهمترین مصرف انگوره در کشفای دیگه ممنوع بوده و انگورم نمی رسیده به چیز مواد زیادی از انگور می ساختن و خورما خورمای شیرهی داشت که شیره شهد بهش میگفتن چیز بود شله و انگورم شیرهی بود که شیره سفید بهش میگفتن و من بچه بودم اینا خیلی, ار خیلی ارزونتر از قهند یعنی شیره اصلا قیمت نداشت تردید راه نبود توی هر جا که انگور زیاد بود این انگور رو مجبور دان آبشو بگیرن شیره بزن بخصن تهرون مثلا بره. و به این دلیل اونا رو بعدم موادی مثل حل و امثال اینا درست میکردم میخوردم قهند نبود کم بود و چایی هم نمیخوردم گفتم خراج مصر طلب میکند لبت تا در این معامله کمتر زیان کنه. میگه با اینکه خراججم مطلب میکنه ولی زیان نمیکنه کسی که این معامله رو بکنه ضرر نمیکنه. بعد در قدیم اصلا تصور زیبایی تصور دیگری بوده. دهان باید کوچیت کسی که دهانش قطعی بزرگتر از معمول یا اصلا دهان لپ های درشت داشته باشه. مرد پسند نبود بنابراین خانم صوفیا لورن مثلا اون بقیه بود کسی <تصفح> <تصفح> به چشم انایت بهش نگاه نمیکرد و این کار به جای رسیده که حافظ میگه رسونده به اون جای آخر کندیم این غذا رفیم میگه که جوهر فرد یعنی اتم البته اتم رو اتم یه اصطلاح دو سه ازار ساله یکی از فلاسفه یونان باستان بنامه دیموتریت که بزرگزر چیز هم هست، مادی هم هست یعنی اعتقاد به اصالت ماده داره این گه که جسمو، هر جسمی میشه دونست پشکر اون دونست من میشه دونست پشکر باز دونست رو میشه دونست پشکر تا جایی میرسه که دیگه به جایی میرسه که دیگه نمیشه اونو دونست پشکر اونو بهش میگیریم اطوم اتم یعنی جز لایت جزا جز که به اجزا دیده تقسیم و در فلسفه در فلسفه استانی بهش میگن جوهر فرد جوهر فرد یعنی اتم یعنی جوهر لایت جزء. حافظ میگه بعد از این هم نبود شایبه در جوهر فرد من دیگه بعد از این شک نمی کنم چون بعضی ها مخالف بودن با این عقیده دموکری. حافظ میگه من در این چکی ندارم بعد از اینم نباوت چاعبه در جوهر فرد که دهان تو برای این نکته خوش استدلالیست به اترین نمونهش دهان تو مثل که سعدی هم میگه یا شاعر دیگری من درست نمیدونم میگه دیدم دهانیی رفتم از هوش دیدی که به هیچ مرده بودم مثل هیچ این از که میگه گفتم به نکته دهنت خود که برد راه نقطه، در اصطلاح هندسی، است که طول و عرض و عمق نداره خواهی و خدای من یادمه که دفتر شعر بیرون داده بود این دفتر من چل چل پنگ ساله پیش دیدم ولی از بس جالب بود اسم بابا یادمه حسین علی فرد گلکار بهفاهانی، این اسمشی دفترم در حجب سلطان علی، سلطانی شیخ الاسلامی که وکیل بهباهان بود، ساخته بود، شعرایی شعرام عجیب و غریب، سلطان علی که کله او چون کدو بود، مثلا نمیدونم، <تصفيق> مشهور در جهاغلت و کذب و دروغ بود، یعنی دروهی در بین دوست و دشمن گردیده مشتحرکین چه اقصد، احج و جد و عبو بود بعد اینا رو نوشته یه چند جام عکس خود شو با پاکیون و اینا شمایلش رو دفعه اول کتاب چاپ کرده پشت جلد چاپ کرده یه دفعه وسط کتاب چاپ کرده چشم بیچاره تا به بود و باز دلش خونک نشته. آخر کتاب بالاخره یک صفحه سفید بود خیال میخوانیم یک سفر چی نوشته بوده دفتر شیعر حجویه سلطان علی که کله اون چون و بعد چی نوشته اعتراض به اصول هندسه اقلیدسی میگه که هندسه شروع میشه با نقطه میگن نقطه چیزیست که عرض و طول و عرض و عمق نداره. پس این حالا میگه این نقطه رو اگه امتداد بدی به یه امتدادی میشه خط. پس خط هم اینجوریه. می بعد میگه خط رو اگه به یه طرف امتداد بدی میشه سط پس سد هم می سطح هم امتداز دادی به یه طرف میشه حجم پس حجم هم اون بعد میگه خواهش میکنم محضر رضای خدا هر کسی که حل این می میدونه اینه برای من به این آجست بنویسه که من از در بیام برای که من مدت هاست باید فکر کنم حالا قضیه درست به عکس این حجم که هست محل تقاطع این حجم با فضا میشه سطح یعنی این رو هست. باید محل تقاطع که محل تقاطع سطح با فضا میشه یه خط این خرکه و بالاخره محل تقاطع دو تا خط میشه یه نقطه یعنی از عکسش باید بگیرم از فهر باید بگیرم بیان بالا این بابا از بالا گرفته، رفته پایین و بعد همونجور مونده بود و هر حال نقطه دهنم هم همونجوره، نقطه طول و عرض اون مدره میگه گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه؟ گفت این حکایتی است که با نکته دان کنه پس دیگه نه گفتم سنم پرست مشو و صمد میشیم. گفت آب کوی عشق همین و همان کنند یعنی چی سنم پرست یعنی بود پرست درست خب صمد یعنی ذات حق میگه من بهش گفتم که سنم پرستی نکن با سمت بنشین گفت در کوی عشق هر تا این کار رو میکنن یعنی چطور میکنی؟ علم ها بگن تو نجد جمال زیبا رو تحسین میکرده همیشه و استنادشون هم به یه حدیثی بوده که ان الله جمیلون و یه های جمال خداوند زیباست و زیبایی رو دوست که یک کسی هم میگفتش که این در کارهای خدا میتونیم ببینیم وقتی یوسف و برادراش انداختن تو چا ازداد تق در عرش خطاب به ایل کرد که برو وسط را بگیرش اگه نرسی بیفته تای چاپ پروالت صفتی بعد وقت اومد وسط راه یوسف رو گرفت آروم گذشت تایید بعد زکریا از دست قومش در رفت و به درخ پناه برد رفت تو درخ ابلیس آمد عره دو سر رو گفتش که با این عره میشین برید عره رو گذشتن چون رو کردم به بریدن تا رسید فرق سر زکریا گفت آخ خطاب رسید از حضرت عهدیت که زهر ما را اگه یه دفعه که دید آ از مطالب پیغمبری عزیز چرا برای اینکه زکریا پیر و حففو میدندون و از من که زوار در رفته بود و یوسف مظهر جمال و مظهر زیبایی البته اینا شوخیه ولی به ان الله جمیلون و یوه بر جمال استناد میکنن به بعضی صوفیه صورت زیبا رو تحسین میکنم خیلی و معتقدن که ما هیچ نظر بدی هم نداریم سعدی این کار مسخره میکنه با این خودش هم جمال فرست بوده میگه گروهی نشینن با خوشپسر که ما پات و صاحب نظر گروهی نشینن با خوشپسر که ما پات و صاحب نظر زمان فرس بر سفره روزگار که بر سفره حسرت خورد روز دا. از آن تخم خرما گوسفند که قفل است بر تنگ فرما و بند میگه حسه خورما میدن به گوسفند برای اینکه در در خود خورما قفله اگه نه از خرما که بعدش نمیاد سر گا و اسار از آن در که است که از کنجه داشت ریسمان کوفته است را میخورم اون برای اینکه به کنجد راش نمیدن منظور اینه که اگرم میگن برای اینکه برایتون بچه راه نمیده یا نمیذاره یا نمیتونن و الا نفی خورد بعدم جای دیگری میگه که یکی گفتش که من در جمال در صنعت حق خیرون موندن که چنین جمالی رو ساخته میگه چرا بچه شش ماه اینطور اینو اینجور اینو اینجوری ما اینو مات مفرط نکرد مگه در اون سن الهی همین معلوم نیست محقق همان بینت در ابل که در کوردرویان چینوچگل محقق در شطور هم همون صنعت الهی رو می‌بینه که در زیبایان چینوچگل هم میبینه پس این هوای نفسه در همین هم یکی هست یکی هست احد الدین کرمانی که میگن که همیشه باید پسر زیبایی بود و اینا بعد میگه که نمیدونم میگن چرا این کار می‌کنه؟ اینا یه چیزی میگه که من تصویر ماه رو در آب ببینم یعنی جمال ذات حق رو در این میبینم اونا هم میگه اگه پشت گردن دورک نداره چرا سر تو بالا نمیکنه خود ماه ببینیم که تصویر رو آب ببینیم این است که تحسیم کردن روی زیبا جز آینهای صوفی است این که میگه سنن فرستمش رو با سمت نشین یعنی دنبال روی زیبا نباش فقط دنبال ذات حق باش و جواب میده که نه در کوی عشق هم اینو میکنن هم این کار میکنن هم اون کارو گفتم هوای میکده قم میبرد زده این حالا هم میشه به میکده حقیقی یعنی محل فروش اومل قباعث اطلاق بشه هم اون مه جذبه الهی که به هر حال اونم وقتی جذب شد آدم اون حالت رو پیدا کرد بگه فکر سود و زیان و برای زندگی روزنش نیست بنابراین به هر حال هوای میکده قمو از دل میبره بعد میگه گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنن. میگه هرکی که بتونه یه دلی رو شادمان بکنه خوشا به سعادتش. چه این باشه چه اون باشه در حیرت. گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنن. این تقریبا شبیه اون گفته خاجعبدالله انساری است. که میگه اگر بر روی آب روی خسی باشه چون معروف بود که صوفیه رو آب راه میرن و قدمشون تر نمیشه و فرو میرن فرو نمیرن حتی سعدی یه چیزی داره که میگه که یه شیخی با من بود هزارا منو پیری از پاریاب مال پاریاب بوده رسیدیم دریای مغرب به آب مرا یک درم بود برداشتن، به کشتی و درویش بگذاشتن یه وقتی که درویش نبردن، درویش سجادش رو راه کرد و راه افتاد و درست مثل قایق موتوری درویش رو آورد وقتی اون بر رسیدیم بعد به من گفت، تا کشتی آورد به ما را خدایی در حال این حرفا بوده میزدن این حرفا رو برای تبلیغ بوده یا هرچی بوده خاج عبدالله و همه صوفیه بزرگ اینا رو تحقیر میکردن میگفتن این چیزا کار مهم نیست اگر بر روی آب روی خصی باشی به خواهشا که پار چوبم تو آب میره اگر به هوا پری مگسی باشی دلی به دست دار تا کسی باشی این هم گفتم هوای میکده قم میبرد ز دل گفتا خوشان کسان که دلی شاب ماند گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهبه هست خرقه داشته باش آدم و شرابم بخوره که حافظ بارها به این مطلب اشاره کرده گفته خرقه رو گیروه می یعنی مقدس ترین یادگاری که داره که یادگار مشایخ دست به دست همینجور رسیده از مثلا ابن عبی ابن حاله و اگر از سلسده های مربوط به علی ابن طالب باشه یا یکی دو سلسله قادری و نقشمندی دیرشون عبو بکره به هر حال از او روز دست به دست معینه که از او به کی رسیده از او به کی رسیده از او به کی رسیده رسید، رسید، تا به آقا بعد آقا برای اینو گرو بذاره گرو می یا مثل اون سلم خاصر که ارز کردم که قرآن برد گرو می گذاشت و می خور. احتمالا خرق جایی گروه باده و دفتر جایی دفتر حساب کتاب که نبوده که لابود باز یه چنین اشاره ایست به هر حال میگه شراب کردن و خرقه داشتن آین مذهب نیست این دوتا با هم منافات داره گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنن این مذهب پیر مغانه همیشه حافظ در برابر پیر صوفیان پیر مغانده بگید دلیلش هم اینه من چند بار اینو گفتم که حافظ صوفی نبود با اینکه یه بارم گفتم که اگر بپرسین که پس چرا پر از اصطلاحات صوفیه است دیوانش دلیلشو رو گفتم حالا نمیتونم بگم فعلا خاشه یه روز دیگه شاید بگم یه بار گفتم بازم میگم. ولی به این دلیل صوفی نبوده که الان تمام از لغات دیوان حافظ شمرده شد صوفی چند بار آمده، نمیدونم صومه چند بار آمده خرقه چند بار آمده، از چند بار آمده، در چند بار آمده یک کتاب پلختی انقدر بزرگتر از دیوان حافظ تقریبا یه برابر نیمه دیوان حافظ هست به نام باجه نمای حافظ در این اولا همه اینا رو نوشته که مثلا صوفی 36 بار بعد اون مصرعی که صوفی توش اومده اونم آورده تمام مطالبی که مر... یا یا اسم صوفی است یا چیزای مربوطه صوفیه صوم خرقه نمیدونم صوفی وش نمیدونم امثال اینا همه اینا رو که نگاه کنی نزدی که به تمامش در مخالفت بود صوفی هر چی؟ نه ها دام سرق باد بنیاد منکی با خلق رو بود. در این صوفی وشان دردی ندیکن صافی باد، عیش دورد نوشان و همثال اینا زیاده، همش، همش درد خب این نشون میده که صوفی نبود، چون آدم نمیشه که پیرو یه آینی باشه و هر چه تو شعرش اسم این آین اومده بدگویی از اون آین باشه این آدم باید دیوونه باشه. ولی بالاخره تصب آخرین راه است می بوده که اگه درست عمل می شده می توانسته در برابر تصب، و خوشکنبیشی و ریاکاری و این بازی های اهل شهر مقاومت کنه چنان که تو الان هم کردی تا الان تمام فرقه هایی که مخالف اینا بودن همه بین بردن نمیدونم خورم دین، مزدکی نمیدونم چیچی پیروان مغنن و اصلا اینا که توی کتاب های تاریخ میبینید همه اینا بین بردن فقط صوفیه همون دارد هم دلیل داره دلیلش این که صوفیه گفتن که ما با اسلاحه خود اینا باشون جنگ میکنم یعنی اول کی کسی میخواد دربیش بشه بهش میگن آتون تو نماز روزت درسته نماز تو میخونی روزت میگیری خمست میدی میگی سکات تو میگی. نمیدونم حج تو میری این وضعیف دین رو انجام میدی اگه بگه نه میگن اول برو اینا رو دقیق همه رو انجام بده بعد بیا وقتی انجام میده و میاد میگن خب این اولشه یعنی حد اقلی که لازمه برای اینکه بیای این تو اینه اما اونجا در دین گفته که تو خمس درامت تو بده ما اینجا میگیم هرچی درامت داری همه بده بعد به غیر از یه لقنون خوده باقیش رو باید بدی و با انواع اقسام این کارا یعنی شروع میکنن در حقیقت اول میگن شریعت بعد طریقت که بعد از اینکه شریعتا همه رو به کار برده بعد میشینید ذکر بگی نمی دونم چله بنشینی، شینی عبادت کنی و ترتیبات تا برسی به مرحله حقیقت البته همه به مرحله حقیقت نمی رسن برای اینکه هر کسی یه گنجایشی داره و یه کسانی هستن که یه حرفایی رو باهاشون اصلا نمیشه زر گفتن که شیخ ابو سعید عبالفیر روی استرال توحید هست دوتا مرید داشت هر دو اسمش احمد یکی رو بهشون گفتن احمد مه یعنی بزرگتر یکی رو بهشون گفتن احمد که برای اینکه از همدیگه شناخته بشن ظاهرا اون احمدی که سابقه خدمتش، سابقه ورودش در خانواد کمتر بوده. احمدی مه زیادتر بوده. ولی شیخ با احمدی که عنایت بیشتری داشته یه روزی از شیخ می‌پرسن که آقا چطور چون است که با وجود سوابق خدمت شیخ را عنایت به احمدی که بیشتر است. دیگه معلومه شد. صدا می‌کنه یا احمدی مه یه لبک یه هاستین و این اشتر را به دوش گیر و بر بام بر احمد ایمه میگه یا شیخ اولا که منظورم زورم این فتر رو برم از که شیخ اینها رو نمیده فتر روی این گندگیون دوبام این که بخوام ببرم این رافله که را نمیده باری که اصلا نمیره طبام این که حالا بالا بردم شطر رو بذارم روی اون سخت که سخت و خونه خراب میشون پایین گفت خیلی خوب گفت یا احمده که گفت لبه گفت آستین برزن و عشتر را برگیر و برقام بر بلا خواستش که درش بالا زدن در خیلی شطره گفت اون به این ترتیب تسلیم عمر شیخ بود که میدونست وقتی شیخ نه اینکه وقتی شیخ یه حرفی رو میزنه این از مصلحتی خالی نیست و به یه جهتی هست که این میگه دیگه وا نمیسه کسی که خودش رو میگه مثل مردهی که در اختیار مردشور باشه باید در اختیار پیر بذاره دیگه وا نمیسه با پیرچون رو چراه کنه وقتی وایستاد با پیر چونو چراه کردن معلوم شد این تصمیم به شیخ نیست و در نتیجه به اون جایی که باید برسه، و بسیاری حرفا رو با اون نمیتونن بزن این هست که بالاخره میرسن به مقامی که مثلا یکی از میون اینا هست که پیر اون رو انتخاب بکنه میگه بعد از من این باید رنبایی رو بگو ولی راه و رسم پیران تصبب طوری بوده که اهل شعر به هیچ نهوی نمیتونستن انگوشت بر حرف اینها بذارن و ازشون و اگر نمونه این چیزا رو بخواید کتاب احسار و توحید خیلی عالیه اونجا شواهد بسیار داره که میگه شهرت بالای منبر رو نمیدونم شعرای خوند که هیچ جور دیگه نمیشد تفسیرش کرد که این معنی عرفانی داره یا معنی الهی داره یا چیزی کشه مثلا سرمست و گشاد رو به بازار آگی نمیتونم نه ترسید که یک روز گرفتار آگی بعد یه، یکی از این آخونده ازش میپرسه خب مثلا این که الان گفتین یعنی چی و شیخ تفسیری میکنه که مات میمونه اون بابا به این است که اینا فقط تونسته بودن محبت کنن در برابر اهل شهر ولی حافظ وقتی میره در درون اینا میبینه اینا هم خالی از گرفتاری نیستن و به هر حال درد او رو دوا بکن نیستن این که از اونم بر میگرده میاد به درگاه پیر مقان نیکی پیر مقان بین که چما بدمستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود میرسیم گفتم ز لعل نوشلبان پیر را چه سود؟ راست میگه یادم پیر میگه گفتا به بوسه شکنینش جوان کنند این همونه که یه جای دیگه هم میگه خاجه گرچه پیرم تو شبیه تنگ در آغوشم گیر تا سهرگست کنار تو جوان برکی گفتم که خاجه کی به سر هجله میرود این دیگه کاملا شخصی اشاره است به اون خاجه گفتان زمان که مشتری و مهد اران کنند مقایسه مشتری و ماه مشتری ستاره سعد اکبره دو تا ستاره سعد داریم یکی زهره است، یکی مشتری منتها زهره ستاره سعده، مشتری سعد اکبره. دو تا هم ستاره نهست داریم که یکی مریخه و یکی زهل که زهل نهست اکفره بعد برای وقت دیدن و نمیدونم بینی و این که ببینند که این کارو بکنن بکنند یا نه و عروسی و این تقویمان قدیمی رو دیدید که نیکس لباس نو بریدن نمازی چرت و کرده این میگه که کاجه چه وقت میره تو هجله میگه وقتی که مشتری و ماه با هم در یک گرش باشن قران یعنی مقارنه و این که پول ایران رو میگفتن قران برای این بود که ناصر بینشاه پنجا سال سال سال کرده بود و بهش می‌گفتن صاحب قران، یعنی صاحب چند قرم برای که قرم رو سی سال می‌گرفتن اون سی سال بیشتر سستنف کرده بود بهش می‌گفتن صاحب قران و پولش هم شده بود قران بلا قران به عنی مقارنه است، نزدیک بودن ستاره مشتری، ستاره سعد اکبره ماه ستاره است که اگه با سعد باشه سعده اگه با نهست باشه نهست ستاره سعد خالی زهر است گفتم که خاجه کی به سر هجله میرود گفت آن زمان که مشتری و مهد فران کنند گفتم دعای دولت او یعنی همون خاجه ورد حافظ است گفتیم دعا ملائک هفراس ما روشن حالا کمی استراحت بفرمی این به خب، عرض کنم که به خونه ها چار. البته منبر بگین بهتر ها. از دارم که با که تو <تصفيق> <تصفيق> مویی و باور نمیدارم دارم روز که این همه قلب و دقل در کار داور می کنم بنده پیر سراباتم که در بیشان روز گنگ را از دیمیازی خواهد شدتر می کنم دارم این نودولتم را با خودشان خودشم که این همه ناد از غلامه خود و بردر میخانه عشق این ملک پسیش در آنجا تینات آدم مخمر می کند. پایانه او کندان که عاشق می کشد، زنگه این دیگر به عشق از بی سر بر می کند. هیگه دای برجه که در دیر مغان می دهند و دلها را توانگرد می ده خادی خب من یه دور که این غزل بخونم و بعد به به کارش و اذان که جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. مشکلی دارم زد دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار دولتان <تصفيق> را با آخر خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و اثر بر در میخانه عشق ملک اسپی بود چند در آنجا تینت آدم مخمر می کند حسن پایان او چندان که عاشق میکشد زمره دیگر به عشق از غیب سر ای گدای خامق برجه که در دیر مغان میدهند آبی دلها را توانگر میکنند خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود این هوسناکان دل و جان جای لشکر میکنند وقت صبح از عش میآمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکند چند دفعه گفتم بازم میگم که شیخ در شعر حافظ معنی آخوند اون که ما حالا بهش میگیم شیخ نیست شیخ درجهی بوده در تصبف و نفر دوم، نفر اول پیره که یک دونه در هر سرسله یک دونه بیشتر نیست ولی مثلا فرض کنید که در سلسلی نعمت اللهی یا در سلسلی گنابادی یا در هر سلسلی دیگری ده تا بیس تا خانقاه هست پیر که به همه اینا نمیتونه برسه که. همه رو که نمیتونه سرفرستی کنه از طرف خودش یکی رو اونجا برای دستگیری و برای انجام دادن کارای اون خانقاه او روش بنابراین یکی یکیست ممکن زیر دستش شیخ های متعدد باشن ولی همه اونها نفر دوبومن در مرتبه تصبر و حافظ به اون شیخ هم عقیده نداره میگه رتل گران ده ای مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد شیخ بی خانقاه رو داشته شیخ خانقاهدار رو دوست ولی به هر جهت اونی که ما امروز بهش میگیم شیخ یا بهش میگیم آخوند او رو باعز میگفته زاهد میگفته و امثال اینا الان اینجا باعز دیگه باعزان که این جلوه در مهراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن بسیاری از واعظان رو شنیده ایم و دیده ایم که میان و میگن و سر منبر مردم گریه میکنن سیحه میزنن، یخه میدارن ولی وقت که خودشون میرن محروم علم توی یادداشاش نوشته که فلسفی رو گرفتیم و سر موقعی که مردم تحریک کرده برن حضیرت و قدس محفل باهایی ها رو ویران کنن دیگه گرفتیمش و این از واسدترین واعظاییست که من دیدم بلا فاصله گفتیم برایش عرق و تریاد بپریسن بله دیگه بعد که ترک که نمیشوندن بله بله همه جا بوده اون بلد کارش ما بلد نیست بله عرق حالا باز کهش نجس نبوده ولی نجستی هم مل می‌فهم دید بله برحال این, این یه سند رسمی‌ستون هم مرد وزیر دربار بوده و این آدم یه باعث معمولی چیزی نبوده که این بخواد اینو کنفتش کنه این چیز بکنه یعنی این مطلب رو برداره بنویسه که این جلو مردم ویابه رو به علاوه اونجا نوشته بوده که این یادداشتای من بعد از مرگ من انقراض سلسله پهلوی منتشر بشه بنابراین احتمالاً اگه سلسله پهلوی مثلا 50 سال دیگه میموند دیگه اثری از اون آدمایی که قلم ازشون اسم بره وجود نداشت حالا تصادف اینجور شد که زودتر شد به هر حال اینا نظایرش بسیار بسیار بسیار زیاده یکی دو تا و سه تا و پنج و 10 تا نیست میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند محراب اون قسمت قوسی شکله که جلوه مسجد هست و امام اونجا میگیسته به نماز کندن و گروهی از طرفداران فارسی سره معتقدن که این محراب باهای حوضه و مهرابه است. و به معنی گمبت و صفح گمبتی شکله و این از معابد مهری تقلید شده و از این هر اول بار هم است که محروم بهروز اینو بودید اما هیچ سندی برای اینکه این, این مصدب رو تأیید بکنه به دست نی یعنی تمام شناسندگان زبان فهلبی و اینا هیچ سندی به دست نی که این مصدب رو تأیید بکنه بنابراین به قید خیلی شک میشه اینو تلقایی کرد در حیرت یا حد سیست یا آدمی که حب دانشی داشته اما منبر منبر کلمه هبشیست عربی نیست با این عربی است. عربیست کلمه است. دلیلش هم این بوده است که رسول اکرم سالهای سال در مسجد وقتی وعظ میفرمودن یه ستونی بوده است وسط شبستون و مسجد یه تیری درختی و به اون تکه می و وعده کرد. و بعدها اهل حبشه که می دونید که یه ادهی از یاران پیغمبر وقتی پیغمبر در مکه بودن مهاجرت کردن رفتن به حبشه که عباس اموی پیغمبر یکیشون بود و بعد ابو صوفیان رو اینا هم دادن که شما اینا رو بیگیرید ببندید چه بکنید اینا آدم های پاسدی هستن و نجاشی پاتر حوشه قبول نکرد و اینا دو بار مهاجرت کردن و هر حال بر رعابط خوب داشتن گویا اونجا برای سخنوری و برای سخن گفتن منبر ترتیب میدادند و اهل حوشه یه منبر سپایه پله داشته میفرستند برای رسول اکرم و این منبر در مسجد و روز اولی که حضرت تشریم بالای بالا منبر که وعظ بکنن اون ستون که حضرت بهش تحکیه میکردن ناله میکنه و به همین دلیل معروف میشه به ستون هننانه یعنی ستونی که ناله میکنه به این نور مصطفی آن استون هننانه را چند طرز چوبی نیستی حنانمش هن حنانمش و شعر مولانا و بعد حضرت میفرمان که خب چی میخوای میخوای که من بیام همش به تو تاکید کنم و باز کنم یا اینکه میخوای درختی از درختان بهشت بشی و اونجا بمونی و باشی میگن من اون رو بعد دستور میفرمان که اون بیارن و دفنش کنن با آدا و ترتیب خاصی اگر اطلاعاتی راجبه این بخوان میتونین در مثلا رغتنامه ده خدا ستون هننه رو ببینین زیرش مقدار زیادی اطلاعات هست در این زنی در مورد منبر هم یه داستان خیلی عالی داره مصنبی منبر محتر که سه پایه بوده است به <تصفيق> نشون میده سه تا پایه داشته وقتی پیغمبر اکرم رهلت می‌فرمان، فرمان ابو میاد و میشینه تو پای دوم دو میگن چرا میگن من که در برابر رسول اکرم اون مرتبره که ندارم وقتی اون حضرت اونجا نشستن جای من نیست نشستن اونجا میشینه پای سه عمر که میاد میشینه پای, پای دوبام میشینه ابو بکر عمر میشینه پای اول واز میپرسن میگه من که شحن ابو بکش رو ندارم شحن من از اون پایینتره بنابراین من باید پایینتر میشنم پله اولی عثمان وقتی میاد میره پله ثبت مینشیم معروف هم بوده که عثمان خیلی حیا داشته یعنی شنگین بوده یا اقل مثلا خیلی پساحت نداشته که زود جواب بده فکر میکرده در حال معروف بوده به حیا. دو می گویند که گذشتگان تو این احترام مرئی داشتن و اون یکی نشست پای دوم و اون که نشست پای اول و تو چطور رفت پای سوم بوم نشست جواب داد که اونا درست عمل کردن ابوبکر اومد پای دوم نشست چون همتراز پیغمبر نبود و عمر آمد پای اول چون همتراز ابو نبود ولی من دیگه پایه نبود و چون همه میدونن که من نه تنها همتراز پیغمبر بلکه همتراز عمر و ابو هم نیستم بنابراین نشستن روی پای ثبوم به ذهن هیچ کس نمیاره که من میخواستم به جای پیغمبر بنشینم به این دلیل نشستم بالا حالا این استعدال شما میخوان قبول کنید میخوان نکنین برای قصهش در مصنبی مولانا آمده در دفتر شهاره. بعد بعدها منبرها به سی پله و چلپله و اینا هم رسید واعظان که این جلوه در مهراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند آن کار دیگر یعنی کارهایی که هرگز روی منور ازش حرف نمیزنن یا اگه حرف میزنن ممانعت میکنن ازش مشکلی دارم که دانشمند مجلس مجلس بود دانشمند به معنی دانشمند امروز نبوده دانشمند معنی آخوند میزن به کسی که علم فقه ولد دانشمند وقتی میگفتن یعنی فقیه هیچ وقت فیلسوف یا ریاضیدان یا پزشک رو نمیگفتن دانشمند هر هم علمش زیاد مشکلی دارم ضد دانشمند مجلس باز پرس مشکل خواجه اینه توبه فرمایان توبه فرمایان از مصدر فرمودن فرمودن یعنی دستور دادنه یعنی کسانی که دستور توبه میدن چرا خودشون کمتر توبه میکنن البته خاجه خب این سوال رو تر کرده ولی جوابش آسونه دلیلش اینه که نصیحت کردن خیلی ساده است عمل کردنش که سخته آقا کم غذا بخوری خود وضعی کم کن آقا ورزش کن مثل قبیشی آقا پیاده را برو آقا بدو آقا برونه به دیگران خیلی راحت میشه اینال اما خودت بخواهی روزی پنگ دقیقه مرزم کنی خودتی که ورزش بکنی این خیلی سخته اینی که راحتتر میکنه که مردم آدم نصیحت کنه ولی خودش <تصفيق> بله خودش این میگه توبه فرمایان چرا خود توبه که هم توبه سخته نمیکنند ولی دست دادنش که سخت نیست بگه آقا از قذب خدا بترس توبه کن بعد البته حافظ میدونه دلیلشو منطقه میخواد این نتیجه بعدی رو بگیره گویا باور نمیدارن روز داوری روز داوری یعنی روز قیامت داوری یعنی قضاوت کردن بررسی به کار نیکووت هر کسی بنابراین روز داوری یعنی روز قیامت میگه مثل اینه که عقیده به روز قیامت ندارن که این همه قلب و دقل در کار داور برای که این کارهای قلب اصلا یعنی پشت رو کردن زیر و آوردن روح رو آوردن چیز یه کلمه رو مثلا وقتی که جاشو عوض می‌کنن میگن مغلوب فرض فرمایند و در ضمن به معنی چیز تقلبی و چیزی رو به خلاف اونچه هست فرانمودن هم بهش میگم قلب و همین دلیل پوری که مثلا با سر میسازن و زرندودش میکنن اونه بهش میگن پور قلب و قلابی از همینه یعنی چیز قلب و اون کسی که قلب رو میسازه بهش میگن قلاب یا قلب زن حافظ میگه خموش حافظ این نکته هایی چون ذره سرخ نگاه دار که قلاب شهر سر را یه صراف این قلب زنم هست بنابراین نکته های مثل ذر صرف تو رو میبره و نکته های تقلبی جاش میذاره. گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنن. آخر خدایی که آلمه به سر و خفیاته کوچکترین خیالی که در دل آدم بگذره. از علم خدا پوشیده نمیمانه اون وقت کلا بسازن و کلا شرعی درست کنن و این بازی که میکنن اینا موزه که دیگه بابا نوزول فول مثلا میخواد بخوره میاد اینو صورت شرعی درست می یا شما بیاین این خونتون رو به من بفروشید خونه چند میارزه؟ یه مدین تو چند بفروشید؟ بیس ازار من این خونه رو از شما میخرم 20 هزار تون هم پولشم به شما میدم بعد این خونه رو به خود شما اجاره میدم به مایی مثلا 500 تون و شما مستعجر من هستین مای 500 تا هم میدین مال اجاره این خونه منتها شرط میکنیم که سر سال اگر شما دلتون خواست بیاین این معامله رو فست کنین پول منه بدین و خونتون رو پست بگیر و خونه یه ملیونیری که هیچ خری نمید بیسی زارتوان برمشه و بعدم اجاره یه همچی خونهی که مای 500 تومن نیست که مای پنی زارتوان یعنی همه چیز کاملا پیداست که این مقصود عرضش اینه که آقای این بیسی رو قرض بگیر مای 500 تومن نزول شده دومن. برای اینو به این لفظ نگه میگه آهات و من رو هم بفروش و به این قیمت بفروش و بعد سر سال اختیار داری که بیه قیمت رو پس به دیگه بگیری بهش میگن به مشروط نمیدارن به شرطی یک اسمی هم گذاشته بودن محضر دارا اینا و به این ترتیب معامله میکردن. بعد حال شهر خیالشون راحت بود که این پول حلال حلال دیگه اصلا نزول نیست حالا گیرم سر من کلاه کلا گذشت، سر خدا رو چکار می‌کنیم؟ یه بنده خدای بود، من خیلی جوون بودم، خیلی واقعا معذرت می‌خوام، پیر مردی بود من اگه اون بیفروایه جوانی نبود، هرگز این کار نمی‌کردم، این نظور پول می‌خورد و این‌ها و پول جمع می‌کرد یه روز من آیه‌ی قرآن رو خوندم الَّذِينَ یک نظرون از ذهب و القزطه ولا یعنفقون ها فی سبیل الله و بش خیلی پر کردم کردن واقعا یه کسانی که زر و سیم رو جمع, جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن بشارت بده اونها رو به عذاب دردناک پیرومر گفتن زر و سیم جمع نمیکنن گفتم پس چی جمع میکنن؟ گفتن اسکناس <تصفيق> اسکناس کاغذه گفتم آقا کاغذ که این کاغذ رسیده یه مقداری تلاست و تو قانون نوشتن که این پولی که شما دست این مثلا ده تومن سالهای سال در دوره پهلاوی اول رو ده تومنی نوشد یک پهلوی و کسی ده مورد بانک میداد پهلوی تلا میتونست بگیره ایام اید و اینا میکار میکرد این رسیده یه مقداری تلاست دست شما و هر کاغذی که ارزش نداره با خوب باشی آه، پس این تلاس گفتنه نیست بعد گفتش که من اگه ظرف طلا و نغ رو بسزم توش قضا بخورم، آب بخورم، چطوره؟ گفتم خب حروم اون ولی اگه این اسگناس مثل قیف توش آب بریزم بخورم، چطور؟ اینم هم حرومه <تصفيق> <تصفيق> بله، این به این ترتیب خود, خود گول میزنه، خب گول بزنه اگه منم جوون بودم فرض میکنه منم گوزات بعد خدارم هم همین رو خواد گول بزنه. ولی میکنه, میکنه. این یعنی که میگه که اینا روز داوری رو باور ندارن و الا این همه قلب و دقل آدم در کار داور که نمیکنه. بر آکفنده پیر خراباتم. که درویشان او گنج را از بنی یازی خاک بر سر میکنن. می دونید که گنجینه رو همیشه زیر خاک می‌کردن. و بهش میگن دفینه یعنی چیز دفن شده. دلیلش هم این است که همه چیز زیر خاک می‌پوسه به غیر از و به مقدار کمتری به مقدار خیلی کمتری سینه. خیام یکی که زان پیش که بر سرت شبیخون آرن فرمای کتاب باده گلگون آرن تو زرنه یه غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرن یک تو گذاشتم تو خاک گذاشتم تموم شد دیگه بیرونت نمیارن که این است که دفینه رو بعد مردم برای اینکه قارتگر بوده و نمیدونم مغول بوده و فغل بوده و کسانی بودن میامدن اینا دفن میکردن چه دفن زیر خاک برای اینکه به یقما نره ولی گاهی اتفاق میخواد که قتل آم میشد و مقدار زیادی از این گنجینه ها و ها زیر خاک میمون یا اون کسی که اون رو دفن کرده بود میمورد و خبر این دفینه رو به کسی نمیداد و این همطور میموند. و این چیزهایی که حالا از زیر خاک باستان شناس و در میارن همه به همین تعدیل این است که میگه گنج رو،, گنج رو خاک میریزن روش یعنی زیر خاکش خ ولی حافظ این رو اون بازی کرده با این لفظ میگه از بس بینیازن اینا خاک بر سر گنج میکنن بنده پیر خراباتم هم که در بیشان رو گنج را از بینیازی خاک بر سر میکنن در ضمن حقیقت اینه که ای کسی نظرش کیمیا باشه دیگه این چیزا پیش ارزش نداره سعدی میگه که شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سی من شنیدم که قدیم کسانی بودند که سنگ در دستشون تبدیل به نقره میشد تبدیل به طلا میشد ما پندار کین قول معقول نیست چو قانع شدی سنگ و سیمت یکی است سیم. گدارا کند یک درم سی سیر فریدون ز ملک عجم نیم سی بخفتن شب روستایی و جفت به ذوقی که سلطان در ایوان نخوب بنابراین اگر نظر آدم که قدر بینیازی پیدا کنه اینا همه از نظرش میره واقعا میره یعنی قدرش پایین میاد در نظر آدم یا عربی نو دولتان را باخر خودشان نشون در زبون فارسی باب معنی به و به به معنی با خیلی زیاد به کار میره و این از درس های اول دستوره که در دانشگاه ده عدد بیاد که با به معنی با به معنی با میگه خدایا این نوع دولتان رو بشون خر خودشون یعنی سر جاشون بینشون که همه ناز از غلام ترک رو ازتر میکنن یارو رو اصلا خدا رو بنده نیست که چیه من ده تا قلام ترک دارم 20 تا قاتر دارم خودش که چیزی نیست که به این وسایل میخواد بگی که من ارزشی دارم اینا نو دولت کیسن نو دولتن از بله یعنی از داشتن دارم یارا این نو دولسان را باخر خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک را اثر تر می‌کنند غلام ترک گرون‌ترین نوع غلام بوده برای اینکه سوار و جنگ آور اینام بوده و غلام هندو ترینش بوده برای اینکه نه ریختی داشته، نه جمال و کمالی داشته نه عقل و هوشی داشته خیلی خنگم بودن چیزی یاد نمی گرفتن متقلب و دوز دوینام اینا بودن این از که وقتی بخواد یک کسی عاشقی به معشوقش بگه که من کمترین غلام تو هستم میگه من هندوی تو هستم تو نظامی آمده که میگه مکن ترکی ترکی یعنی سرکشی و ناز معشوقانه مکن ترکی ای میل من سوی تو. که ترک توام بلکه هندویه فکرت. بله. به ترک گرون ترین نوش بوده اینه که میگه که قلام ترک. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح بود. چند آنجا تینت آدم مخمر می‌کنه. آدم تنها موجود است که عشق داره ملائکه ندارم و در اون قصه خلقت آدم که در سوره بقره آمده میگوید که خداوند گفت که من میخوام یه خلیفه ای جانشینی برای خودم روی زمین بگذارم ملائکه گفتن بار خدایا تو کسانی نبین روی زمین که اونجا فساد بکنن و خون بریزن به حال آن که ما اینجا تو رو تسبیح میکنیم تفیص میکنیم عبادت میکنیم خب من چیزی میتونم شوانه فقط آدم رو میگه و خداوند به ید قدرت خودش چهل روز گل آدم رو سرشت حدیث هست که خمر تو تینت آدم به یده یا اربعین سباهان چهل روز با دست خودم گل آدم رو سرشتم معنیش این است که آدم یه جنبه حیوانی داره، یه جنبه ملکی یعنی از آزار بعدن اینا هیوانه بکنی بلی خب گاهی می‌بینیم که این هیوان هیوان کارش جلب نفعه و ده سره دیگه یه چیز دیگه نیست که اگه من داری علف باشه دوتا گاه با اونجا باشن دعوا میکنم با هم که بالاخره علف های بیشتر رو اون یکی بخوره ولی انسان گاهی از بینیازی به جای می‌رسه که مرتبه ملک رو پیدا می‌کنه. این خیلی مقامش از ملائکه بالاتره. برای که ملائکه اون خشم و شهوت رو نداره ولی انسان داره و با وجودن داشتن بود این است که می خدا میگه که وقتی من روح خودم رو در او دمیدم، فوراً باید بواسطه بهش سجده کنی و همه فرشتگان سجده میکنن الا ابلیس. فقط ابلیس چیزی میکنه و میگه که و قال خلقتم من نار و خلقتم من تین میگه مرا از آتش ساختی و او رو از گل و من به او سجده نمیکنم و عبادت هزار سال زایم شو چه میشه میشه به هر حال این که دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند یا در اینجا بعد در میخانه عشق ملک تسبیح گوی آنجا تینت آدم مخمر می‌کنند. شرف آدم نسبت به ملائک این است که ملائک دارای خشم و شهوت و صفات حیبانی نیستند و دارای احوال ثابتند یعنی اونایی که ساخته شدن برای رکوب کردن فقط رکوب میکنن اونایی که برای سجود کردن ساخته شدن فقط سجود میکنن. منهم رک که اون و منهم سجدون لایرک که اون حالت ثابت دارن از خشم و خبری ندارم ندارن ساخته شدن برای عبادت حیبانم از اومر ساخته شده که به کار حیبانگری خودش مشهول باشه تولید مثل و خوردن و خوابیدن آخر انسان این وسط نه. نه نه اون چیز نداره تمیز نداره بله یعنی گل کردن دیگه تخمیر بله خمیر سرشتن. سرشتن نه نه سرشتن حس نبی پایان او چندان که آشب میکشد کشد زمره دیگر به اشق از سر بر می, می چنین نیست که مردان حق از بین برن مالی یه دوره باشند دون دوره دیگه خیر هر چقدر اینا فدا بشن در راه عشق از بین برند گروهی دیگر از قیب سر بالا میارن و میپیوندن به این خواه ای گدای خانقه خانقاه یعنی خانگاه در حیبت یعنی همون خونه و محل در حقیقت کلوب صوفیه است که بسیاری از اونا در خانقا اصلا زندگی میکردند و خانقا یکی از حواسش اینه که وقتی کسی میاد اون تو هیچ کس ازش نه که تو کی هستی؟ چی هستی؟ چه دینی داری؟ از کجا اومدی؟ کجا میری؟ هیچ تا سه روز که او مهمان میکنن و پذیرایی میکنن و قضا بهش میدن و حتی مغریزی تقییدین مغریزی در کتاب خطتش می که در مصر او یا اگر درست یادم باشه صابون و عطر هم گیره عطر هم بهش می دادن علاو فرسایه بعد از سه روز هم می که اگر شما میخواین اینجا تشریف داشته باشین اعلام بفرماییم که چند روز دیگه اینجا هستیم که ما وستایل فضیبه شد و معمولا مسافران اینا بودن و اهل علم بودن و اهل تصفق بودن که می اومدن در این جاها و می موندن ولی ایکس دیگه هم بود طوری نبود منطقا بعد از مدتی دیگه باید در کار خانقا شرکت می کرد برای اینکه اگر نه اینطور بود یه ادهی می آمدن اونجا باید بگیرن بشینن ارباب اینکه نمیشد. اینی که اگر قرار بوندگار بشه باید بعد یه مقداری از خدمت هم بله بله درد روش باز ای گدای خانقه برجه میگه از خانقه بیا به طرف دیر مغان برای اینکه در دیر مغان آبی میدن مراد چراب عشقه که دلها را توانگر میکنه. روشن روشنید که فیال نمی که توضیح زیادی داشته بشه. دیر دیرموغان رو خاجه در برابر خانقاه قرار میده برای اینکه میگه تو خانقا هم همش ریا هست و اینا گفتم اون بیت رو خوندم گراننده ای مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد و اگر کسی واقعا figure مرشد و مربی باشه این خودشو از خلق پنهان میکنه اینایی که ظاهرا تو و دستگاه دارن و یه ادعاو گردون دارن و مریدار سی نمیکنن میبرن خدمت آقا اونها اینا دکه دارن مرشد حقیقی مثل شمس تبریزی میگه شمس تبریزی سخت پنهان می رفت. به هیچ کس خودشو معرفه زندگی فقیرانه داشت ولی میرفت در کاروانسرای تاجرها لباس خوب می پوشید سه چهار تا کلیدم می انداخلی چیزش که من حجره دارم جنس دارم پول دارم ولی در حجره که حسیر بود و میرفت از دکون کلفزی که از همون قدیم کله و آگوش کله از ارزون ترین خوراک ها بود یه خوراک مثلا آب و یه ذریعه گوشت کله اونا میگرف چند روز با این سر و اون وقت این هیچ وقت هم قصد مورید گرفتن اینا نداشته و وقتی که رسیدیم به مولانا چون دیده که این قابل تربیت هست مثل مقناطیس اینو جذب کرده پیر باید مورید جذب جزب بکن. اینا یعنی هم تا وقتی دید بگه آقا من من دیگه از دست از دامن شما بر نمیدم و الا اینکه بیان و هی برن و هی مقدمات بگن هی اینا چی پان اینا تو کونو دست تازه اون پیر اونجوری دیگه 200 تا مرید و 400 تا مرید که نداره که همون یه دونه مولانا باشه بس اگر که اونم نیست این. این شیخ میخانه باه. تیر بیموریده و کسی که حقیقتا به یه مقامی رسید یا به یه جایی رسید اینا رو میگه در دیر مقان اینا هستن خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شد یعنی میخوای سلطان بیاد خونت بعد خونت کاملا خالی بود. اهل حوث دل و جانشون رو جایگاه لشکر سلطان میکنه برای که کاملا خالی نیست سلطان نمیاد کنجا دلی که میخواد محل تجلی نور حق باشه بعد از هر چیز غیر حق دور باشه, باشه. اگر کوچکترین تعلقی به چیزی داشته باشه این جایگاه شاه خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود که این حوصناکان حوصناک خونه دلشو خالی نمیتونه بکنن از تعلقه ها برای گرفتار حوصه که این دل و جان جای لشکر می اینا دل و جانشون جایگاه فرود آمدن سلطان نیست جایگاه لشگره حالا از نمیدونم تیمسالش بگیر تا سرگروبان چی؟ آ آرز کنم که این به اون تصریبی که شما فکر میکنید اصلا نیست. یعنی به هیچ وجه نمیگن که شما اصلا از دنیا چش بخوش باشی. بریم تو کو زندگی کنید لباس مثلا گونی بپوشی، آدم میگه در دلت مهر این چیزا نپوش. برو بیشین خریده به روشتو بکن تو بازار باش با مردم معامله بکن همه این کار رو بکن اما دل به مهر اینا نبن اگر امروز هرچه داری رفت حالت تغییر نکنی اگر ده برابر شد خودتو گم نکنی ملاحظه میکنی؟ اصلا مطلبش این نیست که تعلق نداشته باش و قطع تعلق بکن معنیش این نیست که اصلا سراغ این چیزها نرو ممکنه یه آدمی یه دونه پوستخ داشته باشه و یه منتشا ولی دلبستگی بسیار به این پوستخ دو منتشاش داشته و یه آدم دیگری ممکنه قصد داشته باشه اون اونه میدونم داشته باشه دلبستگی گونرش داشته باشه این مسئله به این صورت داشته اون ترتیب که آدم باید در بازار باشه در مجلس باشه هر جا هست باشه ولی دلش با خدا باشه و تعلق خاطر به چیزی نداشته باشه وقت صبح از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنه. اینه که میگه گسته ورود یه جای دیگه هم میگه که به نیست که شاه شجای کسی دیگری خطاب میکنه میگه پس از ملازمت عیش و عشق محرویان بعد این دو کار پس از ملازمت عیش و عشق محرویان ذکارها که کنی شعر حافظ از برکنی با حق داشته بشته این شعر بناسی البته با بیتش... بیتش... بیتش... نه، نه، اون همچه قدری نداره که اون قدری نداره که یعنی تغییر حالی به اون صورت نمی یه چند دقیقه ممکنه که یه هجابی را از برابر زیده برداره ولی اون کاری انجام نمیده که عشقی که تینت آدم مخمر میکنه اینا این عشق الهیه حرف